به نام به نام خدای یگانی مهربان سلام افسانه ها بخش مهمی از ادبیات شفاقی و آمیانی ما را تشکیل میدن و قرنهاست هاست که زندگی و آداب و رسوم جامعه ما ایرانی ها با هزاران افسانه شیدین و شنیدنی پیوند خورده افسانه هایی که با رمز و راز و گاه با آموزه های اخلاقی و آموزشی امن و علاوه بر سرگرمی جنبه پندآموزی و عبرت آموزی هم دارند. و ما افسانه ایرانی آسیابان و روبا برگرفته از کتاب قصه های مردم گردآورنده پژوهشگران پژوهشکده مردم‌شناسی سازمان میراث فرهنگی به انتخاب و ویرایش سید احمد وكیلیان براتون بگم که در زمانهای قدیم آسیابانی بود که کارش رو از همون آردهایی که آسیاب میکرد میگرفت. اون آردهایی رو که جمع میکرد گوشه آسیاب میریخت اما مدتی بود که صبح که با آسیاب میومد میدید از آردها خبری نیست که نیست آسیابون با خودش میگفت یعنیش در آسیاب که بسته است. هیچ راه دیگه ای هم که نیست. پس پس کی آرده ای منو میبره ها؟ روزها گذشت و هر روز آردهای آسیاب به سرقت میرفت. آسیابون که از این ماجرا خیلی ناراحت و عصبانی شده بود تصمیم گرفت شب تو آسیاب بمونه تا ترتوی غذیه رو در بیاره. بعد آسیابون افثانه ما شب رو توی آسیاب موند. های شب بود که دید از راه پایاب روباهی در اومد و یه راست رفت سراغ و شروع کرد بخوردن. حالا نخور و کی بخور؟ اونقدر خورد و خورد تا سیر سیر شد. بعد بقیه یه رو جمع کرد و با خودش برد. آسیابون توی دلش گفت. آه، بالاخره توست آردا پیدا شد. روز بعد روباه دوباره به آسیاب اومد. آسیابون بلند شد و رفت راهاب رو بست و اومد سراغ روباه و گفت ای روباه دوست حالا وقتشه که پوستت هستند بکنم و به جای خسارتی که به من وارد کردی پوست نازنینت رو بفروشم تا دیگه فکر دزدی به سرت نزنه روبا که این حرف رو شنید افتاد به دست پای آسیابون و گفت ای آسیابون بیا و منو ببخش گیرم پوست منو فروختی مگه چقدر نصیبت میشه تو تو منو آزاد کن اون وقت میبینی که خیر من به تو از اونم بیشتره اگه اینطور نشد اون وقت منو بگیر و پوستم و گرفتی بکن آسیابون ما حرف روباه رو پذیرفت و از مجازات روباه صرف نظر کرد روباه هم از آسیابون تشکر کرد و ره چند روزی گذشت و توی این چند روز روبا هرچه پارپوروی پارچه و لباس و لنگ کفش و زیم پاره و از اینجور چیزا بود جمع کرد و آورد ریفت گوشه آسیاب آسیابون با دیدن این خرت و پرتو شده گفت خیر و برکت سرت رو بخوره. این آتو آشغالات چیه جمع کردی آوردی ها؟ اصلا خیر و برکت تو بیشتر از اینام نمیشه چون عقل نداری. روباه خنده ای کرده گفت ارباب <تصفيق> عصبانی نشو توی این کار حکمتی وجود داره که بعداً به اون پی میبری آسیابون اصابانی تر شده گفت اینجا رو کردی آشخال دونی. روباه گفت ارباب جان فقط چند روزی به من فرصت بده مطمئن باش خیلی توی این به قول خودت آتو آشخاله آسیابون غرولون کنان رفت سراغ کارش و روباه هم رفت تا کمی دیگه خرتوپه جمع کنه و برگرده. این گذشت تا اینکه یه روز یکی از تاجران شهر میخواست به قصد تجارت راهی سفر بشه. روباه اومد پیش اربابش. یعنی همون مرد آسیابون و گفت ارباب جان این چهار گونه آرد رو بردار برای تاجر ببر و بگو اینا رو روباه ده بالا برای تو فرستاده و میخواد که براش شال و قبای ترمه و کلاه مخملی بیاری آسیابون که از این کار روبا سر سر نمی آورد غرولون کنان پیش تاجر رفت تا گونی های آرد رو از طرف روبا به اون بده و در عوض شال و قبای ترمه و کلاه مخملی برای روباه بیار آسیابون گونی آرت ها رو به تاجه داد و برای روبا شال و قبای ترمه و کلاه مخملی ها روبا هم جلیغه رو پوشید و شال و کلاه کرد و راف افتاد کجا؟ الان براتون میگم بله روبا به طرف قصر پادشاه رفت و زنجیر ایلچی رو به صدا در آورد. حالا این زنجیر ایلچی چی بود؟ این رو هم براتون میگم زنجیر ایلچی از اون زنگای معمولی نبود بلکه زنجیری بود که هرکس برای خاستگاری دختر پادشاه می اومد اون رو به صدا در می اومد خلاسه روباه زنجیر رو کشید و زنگ به صدا در اومد مأموران و نگهبانان قصر پادشاه رفتن و خبر به پادشاه بردن که قبله عالم به سلامت روباهی که ببای ترمه و کلاه مخملی پوشیده به خاستگاری دخترتون شاهزاده خانم اومده؟ پادشاه با عصبانیت دستور داد که روباه رو به پیشش ببرن. معموران قصر هم رفتن و روباه رو به خدمت پادشاه آوردن. پادشاه پرسید، ای روباه، بگو ببینم حرف حسابت چیه؟ روباه گفت، قبله آلم بسرم. من اربابی دارم که هواخواه دخترتون شده و من برای خاستگاری خدمت شما فرستاد. پادشاه که کمی خیالش راحت شده بود گفت خوب اما من که ارباب شما رو ندیدم و نه میشناسم روباه خندهای کرد و گفت <خب> که کاری نداره قربان من میرم و اربابم رو با خودم به حضورتون میارم بله، حالا تا اینجا رو شما شنیدید بشنوید از آسیابون آسیابون مشغول کار بود و داشت کیسه های آرد رو جا, جا می کرد میکرد که روباه سراسیمه وارد شد و گفت توزلی بیگ بلند شد، توزلی بیگ بلند شد سک باش این پار و و خرط و پیتار رو جمع کنیم که باید بریم قصد پادشاه آسیابون که چیزی از حرف های روباه متوجه نشده بود با تعجب پرسید توزلی بیک چیه؟ اصلا اون چیه؟ روباه گفت از امروز توزلی بیک اسم تو ارباب جان بعد اضافه کرد سود باش سود باش باید بریم خدمت پادشاه فاسیوبون گفت دست بردار من کجا و پادشاه کجا میخوای سرم رو به باد بدی؟ رو با خنده ای کرد و گفت <تصفح> نگران نباش ارباب نگران نباش تو فقط هرچی من میگم گوش کنه راه بیفت و انقدر فلسفه بافی کرد تا بالاخره آسیابون قبول کرد که همراه اون به قصر پادشاه روباه و آسیابون رفتن طرف قصر پادشا در بینی راه به روتفونه بزرگی رسیدن روباه یک آن تمام پار و پوره و خرت و رو که به همراه آورده بود ریخت توی روتونه و در یه چشم هم زدن آسیابون بیچاره رو هم هل داد توی آب آسیابون در حالی که توی آب دست و پا میزد فریاد زد آخرش نقشت رو عملی کردی روباه مکار هره باشه هرچی آرد از سفره من خوردی هره اومد باشه دزد بی چشم رو روبا اومد و آسیابون رو از آب گرفت و یه دفعه بر سرزنان و آه کنان به طرف قصد دویید پادشاه از صدای آهو ناری روباه با نگرانی از اتاقش بیرون اومد و پرسید چه خبر شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ روبا همونطور که بر سر و روی خودش میزد با ناراحتی گفت: آدم دیگه میخواستید چی بشه؟ من چهل قافل را که برای شما تحفه و سوقات بیارم. پای یکی از ها لقزی و افتاد توی رودخونه و بقیه اسبا پشت سرش یکی یکی افتادن توی رودخونه. اربابم، اربابم که سوار بر اسب بود خودش رو به آب زد و آب آب آب اربابم رو» بود. پادشاه از شنیدن این خبر متأثر شد و با ناراحتی گفت بیچار اربابتون خیلی عرض داشتم اونو ببینم روباه گفت قبلیانم اربابم زنده است اونو با هزار مکافات از آب گرفتم اما همه مال و انبال و دوفه ها و ها از دستمون رفت نمیدونین که چیزهایی براتون تدارک دیده بودیم سوغاتی های بی نزیر هی که همه نصیب دریار شد پادشاه گفت من پادشاه اون وقت تو برای من بار و اسب را انداخته بود حالا یه دست از لباس های منو به این روباه بدین تا ببره و اربابش رو هرچه زودتر به کاخ بیاره درباریان یک دست لباس گرون قیمت برای روباه آوردن تا بپوشه. حالا از این طرف پادشاه که به حرفای روباه مشکوک بود چند نفر رو فرستاد تا توی غذیه رو در بیارن که روباه راست میگی یا نه؟ افراد پادشاه هم رفتن و پار و پورها و خرت و پرتا رو از آب گرفتن و گفتن بله حتما آب همه اینا رو تیکه پاره کرده. و اومدن به این خبر رو به پادشاق دادن حالا بشنوید از روباه افسانه ما روباه رفت و لباس هاگی گرون قیمت رو تن آسیابون کرد و ببین گفت توسیبیک وارد دربار پادشاه که شدی با صدای بلند سلام کن و برو کنار پادشا بشین مبادا این طرف و اون طرف قصد رو نگاه کنی ها. آسیابون با تعجب پرسید مم. چرا نگاه نکنم حالا دیگه چه نقشه داری واسه من روباه گفت ارباب اگه این طرف و اون طرف نگاه کنی میگن ندید بدیده آسیابون سری تکون داد و چیزی نگو. خلاصه، روباه و توزلی بیک یا همون آسیابون رفتن طرف قصر پادشاه وارد قصر که شدن، روباه سلام کرد و توزلی بیک یادش رفت سلام کنه و شکوه و جلال قصر به حیرت افتاد و ایستاد وسط قصر حالا این طرف رو نگاه کن و بعد اون طرف نگاه کن. بعد با حیرت و شگفتی، محوه تماشای سخف و دیوار و تخت و بارگاه پادشاه شد پادشاه رو کرد به روباه و گفت از قرار معلوم اربابتون تو ندید بدیده می‌بینی چه با دقت همه جا رو برانداز میکنه انگار که توی عمر شرین چیزهایی رو ندیده روباه خنده ای کرد کرده گفت <مید> قبلهٔ عالم به سلامت باد اختیار دارین شما زبون ارباب من متوجه نمیشین ارباب من با نگاه کردن به این طرف و اون طرف میگه خاک بر سر من ببین به چه روزی افتادم که با اون همه ثروت و مالمنال منال باید های پادشاه رو بپوشم اون از اینکه لباس شما رو بتنگرده کرده ناراحت و احساس هقارت میکنه پادشاه از این حرف روبا خشمگین و عصبانی شد و روی خودش نیاورد و بلافاصله دستور داد لباس برازندگی برای توز که یا همون آسیابون افسانه ما بیارن و در قصر جا و مکانی براش معلوم کنن گذشت دو روز گذشت سه روز گذشت تا اینکه روباه خدمت پادشاه رفت و گفت قبله عالم به سلامت. ما که برای خوردن و خوابیدن اینجا نیومدیم مال و ثروت و قافله اربابم توی بیابون مونده باید بریم ببینیم چه خاکی بر سرمون کنیم ما اومدیم خاستگاری، آمدیم مهمونی حالا اگه دخترتون رو به ما میدی خب بگو میدم اگه هم نمیدی بگو نمیدم پادشاه همچنان در سکوت سنگینی فرو رفته بود و نمی‌دونست در مقابل خاستگاری روباه از شهزاد خانم چه جوابی بده. در این موقع روباه سکوت رو شکست و گفت آه سکوت علامت رضاست. اینکالا مبارکه. خلاصه عاقد قصر اومد و شاهزاده خانم رو به عقد توزلی بیک یا همون آسیابون افسانه مادر رو برد. و چهل غلام و چهل کنیز و چهل شطر و چهل قاطر و چهل اسب جهیزیه برای دختر بار کردند و اونا براه افتادند روبا هم جلوتر از همه حرکت میکرد و هر کسی رو میدید با غرور میگفت اینا همه مال ارباب منه آخه ارباب من داماد پادشاهه آسیابون از کارهای روبا هنوز در تعجب و حیرت بود گفت آخه من این همه وسایل کجا ببرم مگه آسیاب کهنه من جای ایناست بعد زیر لب گفت خدایا این چه غلطی بود کردم دختر پادشاه رو که نمیشه ببرم توی آسیاب کهنه ای روبا خیرت بخورتون سرت با این نقشه‌هات روبا با به نفس کامل به شاهزاده خانم گفت عروس خانم اجازه بدیم من زودتر برم و قصر رو آماده کنم آسیابون زیر لب گفت گتوم قصر کار رو از اینکه هست بدتر نکن دیگه آبروی منو پیش این دختر نبر من قصرم کجا بود روباه گفت ارباب جان شما به همراه شاهزاده خانم وسایل رو بیارین بالای کوه. من اونجا توی قصر منتظرتون هستم و از اونجایی که همه جای کوه رو مثل کف دست میشناخت رفت سراغ هفتا فیل که بالای کوهی قصر باشکوه و مجللی ساخته بودن و اونجا زندگی میکردن روباه به فیلا که رسید سلامی کرده گفت این گرد و غبار رو که میبینین ها؟ فیل ها نگاهی به دور دست ها انداختن و گفتن گرد و غبار؟ کدوم گرد و غبار؟ ما که چیزی نمیبینیم روباه گفت درسته هنوز به اینجا نرسیده ولی توی راهه من الان که میومدم دیدم که با چه شتابی داشت میومد طرف قصد شما تازه نمیدونین روبا سکوت کرد و چیزی نگفت فیلها که کنج کاف شده بودند با بیقراری پرسیدن نمیدونیم چی ادامه بده روباه گفت اصلا به من چه مربوط که چه اتفاقی افتاده و چه بلایی میخواد سر شما بیاد آره به من چه مربوط فیلها کلافه شده بودن و با نگرانی پرسیدن روباه جان تو که ما رو جون کردی چه بلایی قرار سر ما بیاد بگو دیگه روباه گفت باشه باشه حالا که اینقدر اصرار میکنین میگم والا دختر پادشاه دیوونه شده و حکیما گفتن این مرز علاج نشدنیه مگه اینکه که شاهزاد خنوم هر روز دست و پاش رو با روغن فیل مالش بده فیل ها یه صدا گفتن روغن فیل روغن جواب داد بله روغن شما حالا میل خودتونه چهل سوار رو چهل پیاده با تجهیزات کامل دارن میان سراغ شما دیگه خودتو بیدونی از ما گفتم بود فیلها با ترس و نگرانی گفتن حالا, حالا چی کار کنیم؟ روباه گفت به من مربوط نیست ها. ولی من اگه جای شما بودم از اینجا میرفتم شما هر که قوی و پرزور باشین زورتون به لشکر پادشکه نمیرسه فیلها که حسابی ترسیده بودن تصمیم گرفتن قصر رو ترک کنن و از اونجا برن خو فیل ها با ترس و هراس قصر با شکوهشون رو رها کردن و رفتن روبا هم قصر رو آماده ورود آسیابانو و شاهزاده خانم کرد چند دقیقه بعد اونا با حیرت وارد قصر شدند شاهزاده با دیدن قصر به شگفتی افتاد و به آسیابون گفت آی خدا من اصلا فکر نمیکردم همسر آیندم چون این قصر زیبا و رؤیایی داشته باش خیلی قشنگه واقعا باش و زیباست خلاصه این گذشتن که یه روز روباه به آسیابون گفت ای آسیابون خیر منو دیدی؟ حالا بگو ببینم روزی که مردم تو چجوری منو از روی زمین برمیداری آسیابون گفت تو خیلی زیادی به من رسوندی مراسم خاکسپاری باشکوهی برات برپا میکنم مراسمی که در شأن و منزلت تو باشه و با غم و اندوه فراوان تو رو به خاک میسپارم روبا از شنیدن این حرف آسیابون خوشحال شده با خودش گفت معلوم این آسیابون آدم قدشناس و با وجدانیه. اون خیلی رو که من بهش رسوندم فراموش نمیکنه. و بعد روبا از این بابت احساس خورسندی و خوشحابی کرد. روزها میگذشت و آسیابون و همسرش زندگی خوبی داشند تا اینکه یه روز روبا خودش رو به مردن زد. آسیابون اومد و با نوک پاش به روباه زد و کمی اونو این طرف اون طرف کرد. دید نخیر. مثل این که روبا واقعا مرده. آسیابون صداش رو بلند کرد و به یکی از نوکرها گفت: "آی پسر، بیا دم این روبا رو بگیر و بنداز توی دره." روبا با شنیدن این حرف یه دفعه بلند شد و با ناراحتی و عصبانیت گفت: "ای آسیابون بی و رو، ببین تو از کجا به کجا رسوندم. حالا دمم رو میگیری و به دره پرت میکنی باشه." الان میرم به دختر پادشا میگم که تو یه آسیابون بینوایی و اون فیلهایی رو که از قصرشون فراری دادم همه اونا رو برمیگردونم اینه دستمز خدمتی که در حقت کردن آسیابون از حرف ها و یه روباه شرمنده شد و شروع کرد به زاری و التماس که بیا از تقصیر من بگذر من اشتباه کردم آب روی منو پیش شاهزاده خانم نبر رووا هم از گناه آسیابون گذشت و از اون روز به بعد به روباه احترام بیشتری گذاشت و سالهای سال در کنارم هم به خوبی و خوشی زندگی کرد افثانه ایرانی آسیابان و روباه رو براتون نقل کردم برگرست از کتاب های مردم به گردآوری پجورشگران پجورشگدهی مردم سازمان میراث فرهنگی، به انتخاب، تحلیل و ویرایش سید احمد وکیلیان همه ما افسانه ها رو دوست داریم و با اونا زندگی می کنیم ها مثل خواب دیدنن با زندگی پیوستگی و شباهت دارن ولی خود زندگی نیستن افسانهها ها جذابیت خاصی دارند که در همه دورهای عمر آدمی از کودکی تا پیری آدمی رو به سوی خودشون میکشونه. پاسداری از این میراث غنی ورزشمند بر احده ماست. افسانه ها رو پاس بداریم و از اونها حکمت پند و عبرت بیاموزیم. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالح بور ویراستار سید فریبرز برز اجرا مهران دوستی صدابردار ستاره همیدی تأیید کننده زهرا عبداللهی تا افسانه دیگر بدرود